لله درك لم تانس بـ ولم تسر خلف طيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستنطر الذل اصغاءا واذعانا <تصفيق> لله درك لم تانس بـ ولم تسر خلف في السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز بسم الله الرحمن الرحيم حمدالله و جتای شفراوان ذات راست که کتابی با را شربهاری دلها و نوری سینها و سیقال دهنده اندوها و دورکننده غمها گردانیده است. و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوندی من را سپاس گذاریم که به ما فرصت داد تا یک بار دیگر از طریق رادیویی صدای جندالله به خدمت دوستانی عزیز قرار بگیریم امروز جمعه تاریخ هفت جمادی الاول مطابق سی مارچ حرکت اسلامی ازبکستان رادیویی صدای جندالله نشرات فارسی خود را در برنامه از جمعه تا جمعه ادامه می دهد خدا کند که همیشه تحت رحمت الهی قرار داشته باشید و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی مورد پیسند شما قرار بگیرد سخن به درازه نمی می میرایم به طرف داشته های برنامه در برنامه امروزی سلسله اندرس ها شهید این هفته قماندان مختوم نصرت فاریابی یک پارچه شیر از شهید منصورکه مساحبه صدای جند الله بابی مجاهد موضوع جالب هفته یعنی اداریه تحولات یک هفته و همینطور در اخیر پرگرام یک ترانه جدید برنامه امروزی را از سلسله اندرس ها شروع می نمائیم سلسله اندرس ها خیر و کرم رساندن به مردم موجب بحرمندی در دنیا و آخرت است. احوال گرسنه را گرس نمی نتیجه نیکی نیکی است. بزرگان باید معاذی به اعمار خیش باشند و سو استفاده نکنند. حسود آسوده نیست، نیازی به دشمنی با او نیست موفقیت همیشه به تلاش فراوان نیست، تعجیل در کارها روان نیست ریاکاری ناپیسند است سعادتمندی به مشیت الهی است بخت و دولت به کاردانی نیست، جز اید آسمانی نیست کمیاگر به غصه مرد و رنج، عبله در خرابه یافت گنج به با باد آتش تیز بدتر می شود پلنگ از زدن کی نورتر می شود بهشت با اخلاق خوب بدست می آید به دوزخ برد مرد را خوی زیشت که اخلاق اینک آمده است از بهشت های شهادت یا ابطال ملحمتون من البطولت والعمجاد نرویها فمخش علا ودنتی زائقة ولتنا ليل الشهادة عس عس معطيها فالله قد وعد الشهداء منزلة مع النبيين في أعلى أعاليها رباه رباه ذابت مهجتي شوقا إلى الجنان فبلغها أمانها فالله قد وعد الشهداء سیناوندگان عزیز رادیوی صدای الله. حرکت اسلامی ازبکستان به خاطر اعلی کلمه الله از دور وقت بدین سو قربانی های زیادی داده است و این قربانی اکنون نیز دارد به همین طور در جریان هفته گذشته روز سه شنبه با تاریخ 4 جمادی الاول فرمانده مخدوم نصرت فاریابی که مسئولیت عملیات های جهادی از سوی حرکت اسلامی ازبکستان را در ولایت فاریاب به داشت با دو برادر دیگر در نتیجه عملیات مشترک نیروهای خبی سیناتو و همکاران مرتدشان به نیمت والای شهادت نایل گشتند مخدوم نصرت فاریابی طالب علم مدرسه بوده و علوم دینی را به پایه اکمال نرسانده بود چون که در این عصر پر از فتنه و فساد درجه و مقام جهاد از حصول علوم دینی اولا بود به همین سبب درست خیش را توقف داده به صفوف مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان پیوست. است قماندان نصرت فاریابی در اوایل ماه هجومت سانی سال گذشته با یک گروه مجاهد که وی قماندانی آنها را به عهده داشت از طرف مسئولین حرکت اسلامی ازبکستان به خاطر انجام عملیات های جهادی در ولایت فاریاب فرستاده شد در آنجا از مدت ده ماه بدین سو همراه برادران مجاهد مصروف فعالیت های جهادی بود در این مدت ضربات سنگینی را به کفار و منافقین وارد نموده و با اخلاق و کردار نیک خود توجه بسیاری مسلمانان را به خود جلب نموده بود. همچنان چند تن از افرادش نیز در نتیجه عملیات های مختلف کفار و مرتدین به شهادت رسیده بودند. از این جمله شهید منور الحق تخاری، فرید احمد بدخشانی و خورشیر فاریابی بودند که در اواخیر نزدیک به شهادت رسیدند. در این لحظات توجه شما را به سخنان شهید ما خدمتسرای فریابی چال می‌داریم. الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله بكرة و أصيلة الله أكبر كبيرة اما بعد فأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلو أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم تبارك <تصفيق> رام شنو مع لباني معزز ومقرب تلباقي مجاهد تلباقي خدا ترس و خداشناس أولا تحفي مصنون إسر وركائنات فخر الموجودات را والان و انا السلام عليكم wa الله وبركاته تقديم لي نمايم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وثانيا اس پیام هاي الهي يک قیامي را ميخواهم شما برسونم و شما نمايم الله وتعالى امتحان ما Barsari maushma ux mo' kuffari johon ruo' mu salad gardoni raqas. Ta' inki bivinam on kasonik, idda' omi kunat kimand bandaji par warrior astam. Idda' omi kunat ba' Allah imona warra astam. Ojoba inki idda' omi huud sodi kasti jo kodib. Ojim tihoon mi kunat ki ojobu fteji mi ojob. Jone. Im tihoon mi kunat Allah, ورسول وجہاد را در راه الله دوست میبینه و یا این فرزندان و اولاد و فرزندان و دارایی و زندگی را دوست میبینه اما باید که ما و شما امتحان الله را باید ما و شما و چدی را کسانی که در مقابل ما و شما ایستادگی میکنند او شیطان است او دشمن ما و او دشمن رسول الله است او دشمن الله است او دشمن دین و ناموس و ننگ ما اما ما و الله و در الله و الله جهاد Allah huk mi farmoja, Allah dina aamun juhatiluna fi sabirilla. Katonikin imon aurraan, unhoh johat mikunan, mukkawatileni kunan, darrahi Allah, walla dina kaffar juhatiluna fi sabirilla pahud, ukkatonikin kafirshunan, mukkawatileni kunan, mikunan darrahi darrahi darrahi پس شما مقاتله بکنید جهاد بکنید بکوشید گستان شیطان را این کهید الشیطانی کان ضعیف ها مکر شیطان هیله شیطان ضعیف می باشد مکر هیله شیطان ضعیف است اگرچی در نظر ما و شما پنج روز قوی هستند پنج روز ما و شما را آزار و اذیت میکنند اما حقیقتاً اونها ضعیف هستند که الله فاک می فرماید jo'atga to'lgan imon rahmat tinga oshib bo'lish dunyo shoh shatistanda imon rahmat tinga کن شهادی استاده قلب شجاعت که توند ایمان جهاد که کس داده همکاری عزیز پارچه را که قبلا از آن تذکر دادیم از شهید منصور اکبین باشد این پارچه در شماره سی و سی لشکر خراسان نیز نوشته شده است اینوان شعر ای مؤمنی افغان زمین است که اینک من به خانش می گیرم ای مؤمنی افغان زمین زنده ام تا در سرا ای مؤمنی افغان زمین میکنم مدحی تو را ای مؤمنی افغان زمین مطلب من از خدا ای مؤمنی افغان زمین کشورت گردد رها ای مؤمنی افغان زمین از یهود و آمریکا ای مؤمنی افغان زمین اهل ایمان زندگانی میکنن اندر وطن گفت و گو باسه زبان کرده چو بلبل در چمن اخوتون خونده شما را آن خدای ظلمنن از برای حفظ دین گردیده اید یک جان و تن چون حسینی کربلا ای مؤمنی افغان زمین بارها در طول تاریخ جهانی پربلا در دیارت آمدن اشغالگرانی بی حیا کوفتی با مشت بدندان از چنان سخت و بجا هر گفتند میهن را دوده چندین مرده ها شاهد است تاریخ ما ای مؤمنی افغان زمین انگلیس ها را چو شیران چون شبا خون کرده ای خون آنها را به شمشیرت چو جیحون کرده ای دشت و صحرای وطن را سرخ و گلگون کرده ای دشمن دین و وطن را خار و محزون کرده ای با جهادت سالها ای مؤمنی افغان زمین روزها را آنچنان کردی در این میدان تو تا کنون مانده بخاکت لاشه ای تانک عدو شوروی را الغرس کرده مرگش روبرو خلق عالم را نجاتش دادی از شر او زنده باشی دائما ای مؤمنی افغان زمین در دیارت منتخب شد آن امیرالمؤمنین در جهان بالا نمودی پرچم دین مبین جاری شد در سرزمینت حکمی رب العالمین تو شدی با مال و جانت حامی مستضعفین ای جنودی مصطفی ای مؤمنی افغان زمین امت اسلام زخابش در جهان بیدار شد واقف از مکر یهود و مفسید و کفار شد هر مجاهد در جهان با هم دیگر هم کار شد از برای دین حق جان برکفان تیار شد در صفی اول شما ای مؤمنی افغان زمین در صفی اول شما ای مؤمنی افغان زمین ای مجاهد از تو دینی مصطفی دارد امید بی کسو مستضعفان در هر کجا دارد امید هم سمرقند و بخارا بوسمیا دارد امید در حرم هم در فلسطین قبلها دارد امید ای امیدی قبلها ای مؤمنی افغان زمین تو جهاد با کافران را از رسول آموختی عزتی هر دو جهان را از رسول آموختی بی درنگ قلع بوتان را از رسول آموختی اتحاد با مؤمنان را از رسول آموختی از محمد مصطفی ای مؤمنی افغان زمین مصاحبه رادیوی صدای جندالله با برادران مجاهد من که مصدره شنواندگان عزیز باز هم خوش آمدید امروز نیز ما مطابق هبته های گذشته مساحبه ای را انجام دادیم با یک برادر مجاهد شما را زیاد منتظر نمی گذاریم می به طرف این برادر که چی نصیحت ها و گفتنی ها دارند برادر محترم بفرمایید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعف بلسانه فإن لم يستطعف بقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر عزيزان نهاية قرامي و برادران دین دوست و خداپرست من می خواهم به حضور داشت شما دقایق مختصر شما را گرفته از قال الله و قال الرسول به حضور شما چند دقیقه صحبت نمایم برادران عزیز و بزرگوار اگرچه این مقام مقام ما نیست و همچنان این گفتار برادر عاجز شما گرچه از لحاظ علم و از لحاظ ادبیات بسیار کم هستم می خواهم دقائق مختصر به شما صحبت نمایم از امر بالمعروف و نهی از منکر خداوند مطال می فرماید کنتم خیر امت اخرجت لین ناس کنتم هستید شما بهترین امت یعنی خارج کرده شده اید برای مردم بهترین مردم آن کسانی هستند که یعنی خداوند مطال در قرآن کریم خودش بیان میکند که اخرجت لین یعنی خارج کرده شده اید برای مردم تأمرون بالمعروف یعنی بعد از خارج شدن چی میکنید؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر امر بالمعروف میکنید مردم را به کارهای نیک امر میکنید و تنهون عن المنکر از کارهای بد نهی میکنید مردم را ممانعت میکنید آن بهترین امت خداون مطال در قرآن کریم قرار داده است و تؤمنون بالله و کسان همچنان بهترین امت هستن که ایمان میارن وهمچنان رسول الله علیه الصلاۃ والسلام میفرماید من را منکم منکرن فلیغیره بیدیه کس کی دید از شما میگه از یکی از منکرات را یعنی فحشا را بی ادبی را فلیغیره بیدیه فسور ممانعت نماید فس کس فا ایلم یستده فا بقلبه و کسی که با همرای زبان خود هم ممانعت کردنه می باید که با همرای قلب خود یعنی بد ببیند که آن کسی که منکرات را کار میکند از آن بد ببرد. به همرای از از, از شستخیض نکند. به همراهی از از صحبت نیک نکند. این چنان هم علما در تفسیر و همچنا در معنای این در تحت این حدیث نوشته کرده است که با همرای دست معنی کردن کار عمره و کار کسانی هستند که وظیفه کلان را دارن و به همراه زبان معنی کردن و همچنان وظیفه آن کسانی هستند که علما هستند به همراه زبان مردم را معنی می‌کنند و کسی که همچنان با همراه زبان معنی کردن آن ادم عوام الناس و دیگر اُمای مخلوق هستند که به همرای ملک Joskus koirat ovat hyvin hyvät, mutta joskus he ovat hyvin huonoja. Joskus he ovat hyvin hyvät, mutta joskus he ovat hyvin huonoja. Joskus he ovat hyvin hyvät, mutta joskus he ovat hyvin قسم است به عصر با زمانه یا با وقت نماز عصر که خداوند متعال میفرماید این الانسان لفی خسر به تحقیق تمام مسلمان ها در خسران است الا الذين امنوا مگر آن کسانی که ایمان آورده است در خسران در زیان نیست بعد از او ایمان آوردن چه وظیفه کند که الا الذين امنوا و عمل صالحات بعد از ایمان آوردن و عمل صالح می کند بعد از عمل صالح چه می کند بعد از عمل صالح و تواصو بالحق مسلمان ها دیگر برادران خود را به حق می کند. و تواصوا صبر و همچنان آن مسلمانی که بعد از ایمان آوردن توصیه به حق میکند لذا برادران مسلمان من هم این حیث یک برادر شما توصیه به حق و توصیه به صبر میکنن بعد از ایمان آوردن در بالای ما مسلمان ها مشکلات ها می آید ها می آید باید که ما و شما توصیه برادر خود را به حق بکنیم بعد از حق بر بالای آن مشکلات می آید توصیه به صبر بکنیم لذا خدا مطال برای همه ما مسلمان ها حقرا شنیدن و عمل کردن و همچنان در مشکلات ها صبر کردن توفیق عنایت بفرمايت یک کمفرانس چهار جانبه بین رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه دایر گردید. موضوع محور بحث در این کنفرانس مناسبات این چهار کشور با همدیگر در مبارزه با مجاهدین اسلام، اقتصاد، امنیت و دیگر مسائل مربوط به افغانستان بود. در این حال، رئیس جمهور ایران احمد نجات به خود گفت، مشکلاتی موجوده در افغانستان و کشورهای همسایه همه ناشی از حضور نیروهای خبیس بین المیلل در افغانستان می باشند. در این حال، دست نشانده آمریکا حامید کرزی در مقابل این سخنان احمد نجات سکوت اختیار نموده عکس عملی از خود نشان نداد. گویا که سخنان وی را تایید نموده باشد. سخنان احمد نجات دور زقیقت نیست. کرزه ای نیست این را فهمیده که حضور ناتو در افغانستان سبب ایجاد مشکلات در این دیار شده است ولیکن این بغیرت فقط غیرت اسلامی خود را از دست داده است. در این حال شماری از اعضای پارلمان و جبهه حق و عدالت این سخنان رئیس جمهور ایران را مورد انتقاد قرار داده و را یک تجاوز در امور داخلی افغانستان به شمار برده و گفتند که خروج نیروهای ناتو از افغانستان مربوط به افغانها میباشد و کشورهای همسایه حق ندارند که با امور داخلی افغانستان مداخله نمایند این اموز دوران فروخته شده در ده سال چینان شدند که گوی با امریکا و ناتو ایمان آورده باشند هر سخنی که از ایشان شنیده میشود بر ضد حق بوده و هرگز در مقابل باطل و در مقابل کسانی که قرآن کریم را علنان به آتش میکشانند لبی به سخن اینها خودشان را تحلیلگران سیاسی می دانند ولیکن در حقیقت تحلیلگر نیستند در قلوب ایشان ذره احساس اسلامی و ایمانی وجود ندارد اگر چنین نباشد چرا در قضیه بگرام که در آن قران کریم به آتش کشانده شد و در قضیه پنجوایی که در آن دهاتن به جرم مسلمان بودن از سوی اساکیر آمریکایی به قتل رسانده شدند و حرکتی از خود نشان ندادند Allah Ta'ala hameyi in murtadin ro agar qabil-e-hidayat bashan hidayat namayat va agar qabil e Allah Ta'ala hameyi ishan ro dar dunya va akhirat khar va zalil namayat amin ya robbal alamin al akbash taltehmul ghida wa yuqatiluna anir radilati yurfisuna liha ad-dima' wa yahussu ba'dohum liqabal ba'd shauqan العجابة ر البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم تر العجابة ر البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم إقبال بعض شوقا وشتها ويقصون اکنون نوبت به بخش اخیری برنامه امروزی ما رسید البته در این بحش از تحولات یک هفته شما را با خبر و زمجد افغانستان یک جماد اول مطابق 24 مارچ در ولایت کندهار اولس ولی ارغنداب در نتیجه انفجار یک ماین ریموت کنترل 8 تن از افراد پلیس به شمول یک عسكر کشته شدند. دوی جومادی الاول مطابق 25 مارچ به با بازماندگان قربانیان حادثه پنجمویی از سوی نیروهای امریکای غرامت یعنی پول نقدی پرداخت شد. البته به کشته شدگان این حادثه هزار دلار و به زخمیان. یازده هزار پرداخت پرداخته شد ببینید، امروز مسلمانان مقام و منزلت خود را نشناختند دشمن حقیقی خود را نشناختند بلاخره نتیجه چین شد که قیمت خون یک مسلمان پینجا هزار و قیمت زخمیانش یازده هزار گشت به تاریخ مذکور در شهر طالقان ولیت تخار دو برادر مجاهد دو فرد امنیت ملی را در این شهر بازر بگلوله به قتل رسانده اند دوی جمادی الاول مطابق 25 مارچ چنانچه قبلا در اداریه ذکر نمودیم در شهر دوشنبه یک کنفرانس چهارجانبه میان سران کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران و تاجکستان دایر گردید در همین حال یک برادر استشاری توسط بمهای دستی خواهان انجام عملیات استشاری در شهر دوشنبه بود متاسفانه بمهای دستی انفجار نموده خود این برادر را زخمی ساخت نظر به گفتهای حکومت بعدن پلیس این برادر را به شفاخانه انتقال دادند سه جماده الاول مطابق 26 مارچ در شهر لشکرگاه ولیات هلمان یک اسکر اردوی ملی بر بالای اساکر نیروهای ناتو گلولاباری نموده از این جمله دو اسکر بریتانوی را کشته و یک آن را زخمی ساخت در اخیر خود اسکر نیز از اسوی نیروهای ناتو به قتل راسانده شد در همین روز سخنگوی آیساب ساب از کشته شدن یک اسکرشان در جنوب افغانستان خبر داده است چار جماده الاول متابقه 27 مارچ در ولایت فاریاب در نتیجه عملیات مشترک نیروهای ناتو و اردوی ملی کماندان مخدوم نصرت فاریابی با دو برادر دیگر به مقام شهادت نایل گشتند. این نالی و این نالیه راجعون پنج جماعت الاول مطابقه 28 مارس در نتیجه یک عملیات شبانه نیروهای ناتو در اولسوالی خانابات ولیات کندوس شش برادر مجاهد به مقام موالای شهادت نایل گشتند. سه جمعه اول مطابق 26 مارس در یک گزارش آمده است که از جمله 193 کشوری که شامل میرال متحدند تنها در 20 آنها حکم اعدام وجود دارد در سال پیش دولت هایی که در آنها حکم اعدام وجود داشت تقریبا به 60 دولت می رسیدند و اکنون 40 دولت پایین آمده است سال گذشته در این 20 کشور تقریباً 667 نفر از جهت جرائم مختلف اعدام کرده شدند در همین حال تحلیلگران شمار این تعداد را قبول نداشته میگویند چین یکی از این کشورها است که سال گذشته در آن تقریباً 4000 نفر اعدام گردیدند در همین وقت در اعدام چین در مقام اول ایران در مقام دوم که سال گذشته در nafar 360 نفر اعدام گردیدند که بسیاری از ایشان به سبب خروج از مذهب شیعه و غیره جرم‌ها گردیدند در 82 نفر در کشور اعدام گردیدند در مقام چهارم عراق که 68 نفر در آنجا اعدام گردیدند در مقام پنجم آمریکا که نفر در مقام ششم یمن که در آن 41 نفر اعدام گردیدند و در مقام اخیر کره شمالی که در آن 30 نفر سال گذشته اعدام گردیدند یک جمادی الاول مطابق 24 مارچ شخصی که در قضای پنجوای متهم بود به آمریکا برده شد و در آنجا در محکمه شخصی که مدافع این اسکراس میگوید من از وای از چگونگی احوالش در هنگام وقوع حادثه پرسیدم وی گفت در هنگام وقوع حادثه عقل قدر عزیز داده بودم 4 جمادی الاول مطابق 27 مارچ در یک کانفرنسی که در کوریا به منظور بحث و گفتگو در مورد فعالیت‌های دایر گردیده بود بعضی از و و بورا که از روشن بودن بلنگو خبر نداشت به دیمیتری میدویدوف گفت در صورتی که در انتخابات آینده برنده شوم امکانیات بیشتری را به شما مهیا سازم در این حال این سخنانی را حاضرین مجلس از طریق بلندگویی نیلند در این کنفرانس شخصی به نام میترومنی که رقیب بارک اوباما در انتخابات آینده است با اشتراک‌کنندگان چینین گفت متوجه باشید که اوباما از همین اکنون به خیانت شروع کرده و شما آمادگی خود را بگیرید اکنون واضح شد که اوباما در آینده خواهان چی است چهار جوماد الاول مطابق با هفته بین سودان و جنوب آن کشور بعضی مسائل داخلی جریان دارد که قریب از بجنگ کشانده کشنده شود در دو روز پی, پی چندین هواپیمای سودان در جنوب آن کشور سقوط داده شد اکنون در این مناطق جنگ ادامه دارد چند روز پیش با تاریخ 3 اپریل رئیس جمهور سودان عمر حسن البشیر خواهان ملاقات با والی یک منطقه در جنوب سودان بود ولیکن به سبب همین جنگ این ملاقات لغو گردید کوفیانان سرمنشی سازمان میرل متحد وارد سوریه شده در آنجا با حکومت آن کشور در مورد توقف حالات کنونی ملاقات نموده در ضمن بشن شرایط زیر اشاره نمود اول حکومت سوریه با ملل متحد اجازه دهد تا جنگ مسلحانه را در سوریه متوقف سازد دوم حکومت باید از مناطقی که در آنجا جنگ با شدت ادامه دارد نیروهای خود را خارج سازد سه دروازه‌ها بر روی مؤسسات کمکی باز باشد 4 وسرایي که به سبب دخالت به سیاست زندانی گردیده‌اند رها گردند 5 و ژورنالیستان اجازه گشت و گذار در داخل کشور داده شود 6 مظاهره کنندگان باید آزاد باشند در این حال حکومت سوریه نیز حاضر شد تا این شرایط را قبول نماید اما شیخ ایمن الزواہری چند روز قبل در بیانه خود بسوی مردم سوریا خطاب نموده گفته بود که ای مردم سوریا شما هشنو و قیسله ناطرا قبل ننموده و خون 8000 هزار نفر را نیز فراموش نکنید یکومی جمادی الاول مطابق 24 مارچ در یک گزارش آمده است که در کشور هند سالانه 1.7 میلیون اطفال در اثر گرسنگی حیاتشان را از دست میدهند در این هنگام کشورهای دیگر هند را تحت انتقاد قرار داده میگویند در حالی که اقتصاد آن کشور نیز نظر به سالهای گذشته افسایشی یابته است چرا در رقم کشته شدگان در اثر گرسنگی کاهش نمی یابد 4 جمادی الاول مطابق 27 مارچ 96 فیصد مردم آمریکا خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشور افغانستان شدند در این حال کسانی که خواهان بقای نیروهای آمریکا در افغانستان هستند نیز اعتراف دارند که تا کنون به هیچ نوع کامیابی ها دست نیافتند ورمین حال کرزه نیز خواهان خروج نیروهای ناتو در سال 2013 یعنی یک سال قبل از مواخته شده است <تصفيق> شناندگانی عزیز رادیوی صدای جند الله این بود داشته های برنامه امروزی که به خدمت شما تقدیم گردید تا جمعه دیگر الله حافظ و ناصرتان و علیکم و رحمة الله و براکیکلات احمدی <تصفح>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 ياصر الشاش زمجر وأضرب مسمعي ياصر الشاش أبي زمجر. الثأر